ژوئ 2008 عزیز چهار روز در بوستون ماند در این چهار روز الا هر روز صبح برای دیدنش از نورتمتون تا بوستون رانندگی میکرد با همدیگر شهر را وجب به وجب گشتند در محله ایتالیایی ها غذاهای خوشمزه اما ارزان خوردم موزه هنرهای زیبا را گشتند پارک کامن و بندر را گس کردند در پارک آبی نمایش دلفین را تماشا کردند در میدان هاروارد توی کافه های شلوغ قهوه خوردند و موقع انجام دادن همه این کارها بیوقفه حرف زدند در موضوع‌های مختلف و شاید عجیب و غریبی مثل دستور غذایی کشورهای مختلف، تکنیک‌های مراقبه، هنر بومیان استرالیا، رمان‌های گوتیک، باغبانی، تکنیک‌های پرورش گوجه فرنگی و تعبیر خواب و رؤیا از این شاخه به آن شاخه می‌پریدند. و موقع صحبت جمله‌های هم دیگر را کامل می‌کردم الا به یاد نداشت در عمرش اینقدر حرف زده باشد شب که به خانه برمیگشت چانه‌اش درد میکرد. با آنکه توی کوچه و خیابان میان آدمها خیلی سعی میکردند به هم دیگر نخورند اما این کار رفته رفته سخت تر می گاه اتفاقی دستهایشان به هم می خورد. بازوهایشان به هم می سایید. الا با خودش می گفت دستم را میگیرد؟ وقتی دید عزیز دستش را نمی گیرد. خودش دست عزیز را گرفت. اول با خجالت و واهمه. اما بعد آزادانه و بدون هیچ ای. اهمیتی نمیداد به اینکه ممکن است آدم آشنایی ببیندشان حتی انگار ته دلش میخواست دیده شود اما باز همیشه فاصلهای بینشان بود روحهایشان به هم نزدیک بود اما بدنهایشان دور ماند از همدیگر چند بار با هم به هتل عزیز برگشتند اما کاری نکردند عزیز نخواست صبح روزی که قرار بود عزیز به آمستردام پرواز کند باز در اتاق هتل بودند یکیشان روی این مبل نشسته بود یکیشان روی آن مبل بینشان هم یک چمدان روی زمین بود الا آرام گفت، چیزی هست که باید بهت بگویم. خیلی وقت است که دارم فکر می کنم این موضوع را چطور مطرح بکنم. عزیز متوجه تغییر آنی لحن صدای الا شد. کنجکاوانه ابروهایش را بالا برد و گفت، خیلی جالب است. چون من هم چیزی هست که باید به تو بگویم. الا انگار که بازی بکند گفت خب پس تو اول بگو عزیز گفت نه حالا که خودت شروع کردی اول تو الا بیان که لبخندش محو شود سرش را خم کرد و خوب فکر کرد که چه چیزی را چطور بگوید بعد حرفش را شروع کرد گفت پیش از آمدنت به بوستون شبی با دیوید بیرون رفتیم و برای اولین بار بعد از مدتها بیان که نقش بازی کنیم رو راست با هم صحبت کردیم. در تو پرسید. نگو مخفیانه نامه های ما را خانده بوده. البته خیلی ناراحت شدم که چرا این کار را کرده. اما منکر واقعیت نشدم. یعنی منظورم چیزهایی است که بینمان پیش آمده بود. پیش از آن که ادامه بدهد سرفه کرد. نمیدانست عزیز در برابر چیزی که الان میخواست اعتراف کند چه اکسل عملی نشان میدهد. گفت: «به شوهرم گفتم مرد دیگری را دوست دارم. شهر بیرون از پنجره سر و صدای همیشگی را داشت سه ماشین آتش نشانی پشت سر هم و به سرعت از کوچه گذشتند حدود یک دقیقه صدای آژیر همه محله را گرفت با آنکه حواس الا کمی پرد شد اما توانست حرفش را تمام کند ادامه داد ممکن است به نظرت دیوانگی برسد اما میخواهم با تو به آمستردام بروم. عزیز به طرف پنجره رفت شلوغی و ازدهام پایین را با دقت نگاه کرد. از ساختمانی کمی جلوتر دود به هوا بلند میشد و ابری سیاه و متراکم تشکیل میداد. برای آدم‌هایی که آنجا زندگی می‌کردند، بی‌صدا دعا کرد. دوباره که سر صحبت را باز کرد، چون هنوز رویش را به طرف الا برنگردانده بود، انگار خطابش به کل شهر بود. من هم می‌خواهم که با من به آمستردام بیایی. خیلی هم می‌خواهم اما هیچ قولی درباره آینده نمیتوانم به تو بدهم. الا پرسید منظورت چیست. زخمی قدیمی سرباز کرد. مردها چرا اینطورند؟ همهشان از وابسته شدن میترسند. این همه بگرد، این همه صحبت بکن، این همه اوقات خوش بگذران، این همه رازهای مگو را بگو. این همه رؤیا بافی بکن بعد یک دفعه تلسم باطل شود. یعنی چه که هیچ قولی درباره آینده نمیتوانم به تو بدهم؟ چه جمله بی احساسی؟ فقط مرد ها میتوانند همچو جملهی بسازند. عزیز انگار که فهمیده باشد در ذهن الله چه میگذرد لبخند زنان کنارش نشست و دستش را نوازش کرد و گفت آنطور که فکر می نیست. الا گفت پس جور است؟ عزیز گفت روزی زنی ناشناس ایمیلی برایم فرستاد. نوشته بود رمانم را خوانده گفت که کتابم با دوره عجیبی از زندگیش همزمان شده. گفت سر دراهی مانده. عزیز قرق در فکر لبخند زد. می‌دانی راستش آن موقع که ایمیلت را گرفتم من هم در دوره عجیبی از زندگیم بودم. الا پرسید یعنی کس دیگری هست؟ عزیز گفت نه جانم همچون چیزی نیست. عزیز یک بار آرام شد. گفت: «تا امروز سه مرحله از زندگیم را برایت نوشتم تعریف کردهام که چطور با سه حرف اول کلمه صوفی آشنا شدم. تو چهارمین حرف را از من نپرسیدی. شاید هم توی شلوغی از یاد رفت من هم جسارت پیدا نکردم تا تعریف کنم. حالا که آشناییم با حرف یه هم حکایتی دارد. می خواهی گوش کنی؟ الا با آنکه از هر چیزی که تلسم آن لحظه را بشکند واهمه داشت، باز هم سرش را تکان داد. گفت، بله، می بشنوم، تعریف کن. عزیز ظاهرات در آن روز ماه ژوئیه در اتاق هتل چند ساعت مانده به پروازش به آمستردام زندگیش را پس از سال 1976 که صوفی شده و اسمش را عوض کرده بود برای الا روبینشتاین تعریف کرد. از آن تاریخ به بعد با ظاهر عکاس و باطن درویش دنیا را گشته بود در شش قاره دوستان و رفقایی پیدا کرده بود مفهوم خانواده را نه در پیوند خونی بلکه در پیوند روحی یافته بود دو بچه بیکس را در رومانی به فرزندی قبول کرده و بزرگشان کرده و خرج تحصیلشان را داده بود دیگر ازدواج نکرده بود چند بار از ساحل عشق برگشته بود و در عرض این مدت دو یادگاری خانقاه مراکش را از خود دور نکرده بود نه گوشواره نقره را از گوشش درآورده بود و نگردن بند شکل خورشید را از گردنش باز کرده بود تصوف شده بود محور اصلی سرشت و زندگیش. عمرش را وقف ایمان به عشق و کمک به دیگر انسانها کرده بود. در هر مکانی و در هر شیع و ذرهی دنبال نشانه های خدا می گشت. و بعد دو سال پیش وضعیت سلامتیش دچار مشکل شده بود. یک دفعه احساس میکرد بیحال شده. با نقطه متورمی که زیر بغلش پیدا شده بود در یک آن همه چیز تغییر کرده بود. افسوس که دیر متوجه شده بود. معلوم شد آن نقطه متورم کوچک مالین ملانوم است. نوعی سرطان پوست. دکترها مدت زیادی نتوانسته بودن تشخیص بدهند و برای مشخص کردن ابعاد بیماری پشت سر هم آزمایش می کردند. سرانجام که به نتیجه رسیدند خبرها چندان خوب نبود. ملانوم به اعضای داخلی سرایت کرده و کبد را دربر گرفته بود. آن هنگام عزیز پنجا و دو ساله بود. گفته بودند ممکن است پنجاه و پنج سالگیت را نبینی. برای همین خودت را آماده کن. به این ترتیب ای تازه و از بعضی جهات پربارتر در زندگیش شروع شده بود. هنوز جاهایی مانده بود که دلش می‌خواست ببیند. بعد از آن نه تنها سیاحتهایش را متوقف نکرده بود بلکه بیشتر از هر زمان دیگری مسافرت کرده بود با استفاده از ارتباطاتی که در همه جای دنیا داشت در آمستردام یک بنیاد سوفیسم تأسیس کرده بود در اندونزی پاکستان و مصر با نوازندگان سوفی چند کنسرت اجرا کرده و حتی در اسپانیا در قرطبه با گروهی عارف یهودی و مسلمان آلبوم مشترک منتشر کرده بود به مراکش برگشته و به زیارت خانقاهی رفته بود که اولین بار در آنجا با صوفی ها آشنا شده بود بر سر مزار بابا سمت دعا کرده و به تفکر پرداخته و از کوره هایی که زندگی برایش در نظر گرفته بود، با سپاس یاد کرده بود. عزیز چشمکی زد و گفت، بعد شروع به نوشتن رومانی کردم که همیشه دوست داشتم بنویسم، اما نوشتنش را به تأخیر میانداختم. اسم رمان را گذاشتم ملت عشق. بعد از تمام کردنش توی پاکتی گذاشتم و برای معسیسه انتشاراتی مشهوری در آمریکا فرستادمش. چیز زیادی انتظار نداشتم، اما خودم را برای هر احتمالی آماده کرده بودم. یک هفته بعد از زنی اسرارامیز در بوستون یک ایمیل برایم آمد. الا نتوانست لبخند نزند عزیز گفت از آن لحظه به بعد همه چیز تغییر کرد یک دفعه از آدمی که آماده مرگ می شود به آدمی که اسیر عشق می شود تبدیل شده بود لازم شده بود همه قطعاتی را که فکر می کرد سر جایشان گذاشته بار دیگر از نظر بگذراند ایمان، عشق، آرزو، ترس از مرگ، آرزوی زندگی جاودانی خانواده، کاشانه، حسرت، سعادت لازم شده بود در باره همه این مفاهیم از نوع بیاندی امروز خودش را آماده مرگ حس می کرد اما هنوز نمیخواست بمیرد به این مرحله که آخرین مرحله زندگیش بود می گفت موسم آشنایی با حرف یه از کلمه صوفی شاید هم این سختترین مرحله بود چون در زمانی که گمان میکرد اگر نه همه بیشتر حساب های درونیش را به پایان برده و به لحاظ معنوی کامل شده، برای اولین بار احساس تزلزل می کرد. در تصوف مردن پیش از مرگ را یاد گرفتم. قدم به قدم از منازل گذشتم. سعی کردم تا آنجا که درک می کنم در این طریق پیش بروم. درست موقعی که فکر می کردم همه چیز رو به راه شده، یک دفعه تو از آسمان با زنبیل پایین آمدی. بعد از اولین نامعت همه چیز خیلی سریع تغییر کرد. هر روز پای کامپیوتر نفسم را حبس می کردم و با خود می گفتم خوب است الا باز هم برایم نامه نوشته باشد. این طوری زندگیم شد داستانی که در انتظار تعریف شدن برای توست. و فهمیدم که دلم میخواهد بیشتر بشناسمت. بایست اوقات بیشتری با تو میگذراندم. مدتی که برایم مشخص کرده بودند یک دفعه به نظرم کوتاه آمد. کوتاه و ناکافی. در نقطه اصیان در برابر خدایی بودم که خودم را تسلیمش کرده بودم. الله با نگرانی زمزمه کرد. مریضیت. با همدیگر میتوانیم از پسش بر بیاییم. عزیز گفت. شانزده ماه دیگر مانده. دکترها میگویند. البته ممکن است اشتباه کرده باشم نمیدانم. همانطور که میبینی، تنها چیزی که میتوانم به تو بدهم، همین لحظه است که آن هستی. خب، راستش را بخواهی، کسی نمیتواند به کسی دیگر فراتر از این را وعده بدهد. اما همیشه این حقیقت را فراموش میکنیم. دوست داریم برنامههایی در مورد آینده بشنویم الله سرش را خم کرد نگاهش به نوک پاهایش خیره ماند سنگینهیش را به یک طرف داد انگار یک طرفش داشت میافتاد و طرف دیگرش مقاومت میکرد شروع کرد به گریه کردن عزیز گفت خواهش می کنم گریه نکن. بزرگترین آرزویم این است که با من به آمستردام بیایی. شهرم را نشانت می دهم. با همدیگر دیگر دنیا را می گردی. تا آنجا که می توانی. دوست دارم همراه تو با آدمهای تازه آشنا بشوم و به تماشای اثر معزمی بنشینم. که آفریدگار خلق کرده است الله مثل بچهی که اسباب بازی رنگی و بر جلوش گذاشته باشند گریه را قطع کرد و دماغش را کشید گفت من هم من هم خیلی دوست دارم عزیز گفت نمی اینها را برایت تعریف کنم حتی دست زدن به تو برایم سخت بود. تو همیشه زندگیت را بر پایه فکر آینده ساخته ای. ترها، برنامه ها. به نظرم غیرممکن ممکن می آمد به آدمی مثل تو بگویم یالا همه چیز را ول کن و با من بیا. اما فردا من پیشت نخواهم بود. الا همین که این حرف ها را شنید، انگار تازه متوجه حقیقتی شده باشد، هیجان زده گفت. همه اینها درست. اما نمیفهمم چرا به این زودی تسلیم شده ای. می توانی با سرطان بجنگی. به, به خاطر من می توانی این کار را بکنی. به خاطر ما. عزیز گفت. برای سالمتر و طولانی تر عمر کردن هر کاری از دستم بیاید انجام می دهم. اما با سرطانم مبارزه نمی کنم. الا گفت سردر نمی آورم مگر نمی خواهی زنده بمانی. البته که می خواهم، اما طور دیگری. در حال جنگ با همه چیز هستیم. جنگ با تروریسم، جنگ با فقر، جنگ با تورم، جنگ با ایدز، جنگ با سرطان، جنگ با رشوهخاری، حتی جنگ با چاقی. راه دیگری غیر از جنگیدن وجود ندارد الا بی حوصله فریاد زد من مثل تو صوفی نیستم در آن لحظه دهها فکر از ذهنش گذشت، کنار نیامدنش با خودکشی پدرش، بچگی پر از دربدریش، عذاب وجدانش، احساس گناه کردنش، تصمیمش به این که ازدواش کند و خوشبخت شود و همه ها و نومیدیهایی که سالها بود توی خودش میریخت و بروز نمیداد در یک لحظه جلو چشمش مجسم شدند عزیز لبخند زد و گفت صوفی نیستی میدانم لازم هم نیست صوفی بشوی تو فقط کافیست مولوی بشوی الله چند بار چشمهایش را باز و بسته کرد و پرسید منظورت چیست؟ عزیز گفت یک بار از من پرسیده بودی تو شمس هستی؟ منتهای آرزویم است، اما من نمیتوانم توانم شمس بشوم، در حد و اندازش نیستم، ولی تو می توانی مولوی بشوی. عشق از بس استفاده شده، به کلمه ای تو خالی تبدیل شده، اما تو با هستیت، می توانی عشق را متعالی کنی. الا با صدایی گرفته گفت، من شاعر نیستم. عزیز گفت، مولوی هم شاعر نبود، اما شاعر شد. الا گفت، مگر نمی فهمی عزیز، من زنی دارم، مادر سفرزند. مرا در نظرت زیادی بزرگ نکن. عزیز صدایش را پایین آورد. گفت در حق خودت بی انصافی می کنی. همگی همانیم که هستیم. مهم این است که آیا جسارتش را داریم که خودمان را تخییر بدهیم؟ اگر از بابت این عشق به اندازه کافی مطمئنیم می توانیم باقی این سفر را با هم ادامه بدهیم. آخر سر با هم دیگر به قونیه می می‌خواهم آنجا دفنم کنند. الا گفت این چه حرفی می زنیم. عزیز سرش را خم کرد. الان در چهره حالتی دیگر بود. بعد در حالی که سعی می کرد کلمه ها را انتخاب کند حرفهایش را تمام کرد یا این که می توانی الان از اینجا یک راست به خانت برگردی و این پیشنهاد را فراموش کنی اینطوری به آشیانت پیش بچه هایت فقط این را بدان که من به هر حال دوستت دارم